طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت چهاردهم از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموعه گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن می‌پردازد در این راستا برنامه چهاردهم رو به موضوع شرابخوری اختصاص دادم آیا در شریعت قرآن مبین نوشیدن خمر یا مشروبات الکلی می باشد یا خیر همان گونه که واقفید در قرآن کریم آیات متعددی پیرامون خمر یعنی مشروبات الکلی اشاره گردیده فلز در این راستا جهت روشن شدن این موضوع با استناد و استشهاد به کلام الله مطالبی رو خدمتتون عنوان میکنم خوردن مشروبات الکلی بر نفس و نسل بشری پیامت ها و تأثیراتو سو میذاره پس مطابق حکم الله قطعا فساد بوده و هر گونه فساد مطابق آیه 25 سوره بقره موجب کراحت الله تعالی میباشد و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فيها و يهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد و چون برگردت کوشش می که در زمین فساد نماید و کشت و نس را نابود سازد و الله فساد را دوست ندارد شرابخاری یکی از گناهان کبیره بوده که قرآن کریم پیروان خودش را از اون برحضر کرده چنانچه در آیات نود الى که سوره مائده برخی آثار و پیامدهای منفی و خانمانسوز و نیز زیانهای آشکار شرابخاری میگساری و مستی از سوی الله متعال ایراد شده چنانکه که میفرماید ای کسان که ایمان آورده اید شراب و قمار و بطا و تیرهای قرعه پلیدند و از عمل شیطانند پس از آنها دوری گذینید باشد که رستکار شوید همانا شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از سلات باز دارد پس آیا شما دست برمی دارید و همچنین الله تعالی در آیه چهل و سه نسا به مؤمنان می میکنه که در حالت سکر یعنی در شرایطی که مستید و از خود بیخود شده و کنترل خودتون رو از دست دادید صلات اقامه نکنید ای کسانی که ایمان آورده اید در حالت مستی به سلاط نزیک نشوید تا زمانی که بدانید چه میگویید زرن و زیانهای فردی و اجتماعی شرابخواری و مستی بر کسی پوشیده نیست هر هرچند ممکنه منافع زودگذر و اندکی داشته باشه چنانکه قرآن کریم هم بر این مهم تصریف فرموده سوری بغره آیه دویست و نوزده هم در باری شراب و قمار از تو میپرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است فلزا با انایت به تعالیم و آموزهای مندرج در متن مقدس قرآن کریم خوردن هر نوع مشروبات الکلی به واسطه ایجاد فساد در نفس و نسل مستاق عینی گناه کبیره از سوی حق تعالی محسوب گشته و حرمت یعنی حرام بودن فعل گناه در آیه ۳۳ سوری اعراف به تفصیل بیان شده است. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون بگو پروردگار من فقط زشکاری ها را چه آشکارش باشد و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانید است و نیز اینکه چیزی را شریک الله سازید که دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمیدانید به الله نسبت دهید و زمنا این نکته مهم باعثی مد نظر قرار بگیره که پیرامون حد شرابخاری از سوی حق تعالی هیچ گونه حکم و فتفایی سادر نشده فلیزا احادیث روایات و فتاوی کافرانه و مشرکانه زیر عنوان سنت به اطرت ساختگی مطروحه در مصادر و منابع فقهی دستگاه روحانیت شیعه و تسنن مبنی بر شلاق زدن شرابخوار کوچکترین ربطی به شریعت عالی اسلام نداشته و اجرای چنین حدی از نظر الله متعال باطل و مردوده به عنوان مثال فتوای آقای خمینی پیرامون حد شرابخار حد شرابخاری هشتاد زرب شلاغ است که بر پشت دو کتف و بقیه بدن شخص شرابخوار زده می شود و از زدن به سر و صورت و شرمگاه او خودداری می گردد کتاب تحریر الوسیله جلد دو صفحه چهار سد هشتاد شورا آیه 21 کم ام شرکاء شعر لهم الدين ما لم يهدا به الله الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم او ایشان را شریکانی است که شر می کنند از دین آنکه الله بر آن اجازه نداده است و اگر فرمان قاطع در باری تاخیر عذاب در کار نبود مسلما میانشان حکم میشد و برای ستمکاران عذابی پردرد است نتیجه اینکه مطابق حکم و فتواهای الله تعالی در قرآن مبین خوردن هر نوع مشروبات الکلی گناه و حرام تلقی گشته و بر باورمندان به دیانت اسلام واجبه به احکام و فرائض الهی مندرج در متن مقدس قرآن مبین پایبند بوده و در این امر هیچ گونه تخطی و نافرمانی ننماید در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع شرابخواری گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن